بخش سوم تحریف حافظه و شدت حافظه پس از بررسی یادزدودگی ها و ناراحتی هایی که به حافظه مربوط میشوند در اینجا به بررسی تحریف حافظه و شدت آن میپردازیم در واقع تحریف حافظه شامل توهم قبلا دیدن یا قبلا زندگی کردن میباشد که پیش از این در مورد آنها صحبت کردیم و نمیتوان به آنها دقیقاً عنوان یک بیماری حافظه را اطلاق کرد این حالات همان گونه که دیدیم بیشتر در مورد اشکالهای ادراک بوده و علاوه بر آن دارای خصیصه بیمارگونه کاملا مشخصی نیستند همان گونه که برگسون میگوید این حالت بی خطرترین شکل بی توجهی در زندگی است عکس این حالت یعنی هرگز قبلا ندیدن شامل دوباره نشناختن و تازه پنداشتن چیزهایی است که در واقع آشنا هستند و این حالت نیز یک اشکال جزئی و گذراست. است توهم مشابهی را نیز که در آن شخص فرد دیگری را که قبلا به خوبی میشناخته دیگر تشخیص نمیدهد، ولی در عین حال قبول دارد که شباهتی موجود است و به همین دلیل وی را به عنوان مشابه شخص آشنای خود میپذیرد میتوان مربوط به این حالت دانست معمولا نشانه‌ای هست که به هزیان مربوط می‌شود درست ماننده همان چیزی که در اسکیزوفرنی به چشم می‌خورد شدت حافظه که به خاطر نشانه‌هایش در برخی موارد با ناراحتی‌های قبلی و خصوصا با یاد زدودگی متضاده است اغلب شامل اقراق وسوسه آمیز و ناخوشایند و گاهی اوقات غیر واقعی از زندگی مجدد در گذشته می‌باشد بدین ترتیب در روانپزشکی یک فرد کانا میتوانسته است موعظه کشیش‌ها را کلمه به کلمه تکرار کند بدون آنکه معنای آن را دریابد و یک پیشخدمت بی سواد گاهی اوقات قطعات کاملی از یونانی، لاتین و یا ابری را که در سن 9 سالگی عموی کشیش او بدون آنکه توجهی به وی داشته باشد میخوانده تکرار می‌کرده است تیودور ریبونیز موردی را به این شکل شرح می دهد. یک فرد کالیف هر بار که سال روز دفن کسی که 35 سال قبل مرده بود نزدیک می شد می توانست نام و سن متوفا و همچنین نام کسانی را که در تشریج جنازه وی شرکت کرده بودند به صورت کاملا دقیق بگوید. همین محقق می نویسد یک پسر پانزده ساله ی تبدار کوچکترین جزئیات عمل جراحی را که به وسیله مته جراحی در کودکی روی وی انجام گرفته و هرگز در مورد آن برای وی صحبتی نشده بود تعریف کرد. بنابراین نظریه رایجی را که بر اساس تعدادی از مشاهدات استوار است می توان به این مسئله افزود. بر طبق این نظریه اشخاص محتظر و یا کسانی که در خطر مرگ قرار میگیرند، تمام زندگی خیش را مانند یک چشمنداز دوباره میبینند. به دین ترتیب شاعر ایتالیایی ویتوریو الفیری پیش از مرگش بیداری حافظه خود را به نحو عجیبی دید. او اشعاری را که پنجاه سال پیش از آن نوشته بود به خاطر آورده و شروع به خواندن تعداد زیادی از اشعار یونانی هزیوت کرد. به نظر میرسد این نوع شدت حافظه که گاهی اوقات با دیگر حالات روانی همراه است، در حالات مرگ ظاهری نیست که تا به خوبی توجیه نشده است، به وجود می آید. بخش چهارم حافظه پیش از مرگ رؤیا یا واقعیت اده از بیماران و خصوصا کسانی که دچار تصادفات شدید شده و مرگ بالینی آنها آنگونه که باید ایجاد شده است، و سپس پس از معالجات طولانی دوباره به زندگی بازگشته اند، شهادت داده اند، حوادثی را که پس از مرگ برایشان اتفاق افتاده به خاطر آورده و از طریق نوشتن یا زفت به کمک صوت به محض به هوش آمدن این خاطرات را حفظ کرده اند. چندین مورد از این مسئله را پزشکان آمریکایی، خصوصا دکتر ریموند مودی، الیزابت مایکل سابور، سارا کرندزیگر، رینگ و فرید اسکنمیکر مشاهده کردند و امروز مسئله تجربه پس از مرگ در آمریکا فوق‌العاده مورد توجه قرار گرفته است. نشریات علمی مقالات بسیاری را به آن اختصاص داده و یک گروه از محققین به نام جامعه مطالعات علمی پدیده نزدیکی به مرگ کاملا به این پدیده اختصاص یافته است. در اروپا نیز موارد بسیاری از زندگی پس از مرگ مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از این موارد توسط یک آرشیتکت به نام استفان ونجانکوویچ در هفتمین کنگره ایما ایماگوموندی به دقت مطرح شده و توسط من نیز مورد تحقیق قرار گرفته است. قبل از تعریف واقعه، استفان جانکوویچ متذکر شد که وی قبلا هرگز با مسئلهی متافیزیک سر و کاری نداشته و در واقع به هیچ وجه توسط کسی برنامه ریزی نشده است. او در سال 1964 در نزدیکی بلینزونا در سوئیس در هنگام عبور از جاده دچار تصادف شدیدی با یک اتومبیل شد و پس از توقف قلب به مدت شش دقیقه دچار مرگ بالینی می شود. وی در این باره می گوید در اوایل حالت مرگ بالینی احساس کردم که یک پرده مانند پرده تئاتر پیش چشمانم باز شد. اولین مرحله آگاهی یافتن از مرگ خودم احساس می کردم که تسکین یافته و تقریبا آزاد شده ام. فکر می کردم که خیلی خوشبخت بودم که اکنون بدون هیچگونه استرابی مردهام و با کنجکاوی همراه با خوشحالی منتظر ادامه بقیه وقایه بودم. خودم را در حال پرواز می دیدم و در همان حال صداهای بسیار لطیف و زیبایی را می شنیدم. از سوی دیگر، اشکال، حرکات و رنگهای موزونی را احساس می کردم. می توان گفت احساس می کردم کسی مرا صدا کرده و دائما به سمت بالاتر و به یک دنیای دیگر هدایت می کند و زمیر خداگاه من از یک آرامش و صلح و صفای متعالی و یک توازن باور نکردنی انباشته می شد. کاملا خوشحال و بدون هیچ گونه مشکلی بودم و به تدریج به سمت نور حرکت می کردم. این مرحله اول خوشبختی رضایت و توازن در ادامه تغییر کرد. صداهای موسیقی مانند، روشنتر و زیباتر شده و با رنگها، اشکال و حرکات همراه شد. در مختعه بعدی و پس از این مرحله بسیار جالب، من خود را در بالای محلی که تصادف در آن اتفاق افتاده بود یافتم و بدن خود را که بدون حیات به شدت زخمی دقیقاً در همان وضعیتی که بعدها در گزارش پلیس ذکر شده بود روی زمین افتاده بود مشاهده کردم. سپس دیدم که یک پزشک چگونه سعی در دوباره به حرکت درآوردن قلب من دارد. او ضمن آنکه شکستگی دنده های مرا مورد بررسی قرار میداد، می گفت من نمیتوانم ماساژ قلبی بدهم. از آن گذشته، او مرده است. مسئله پرواز کردن در بالای محل تصادف اولین تجربه چند بعدی من بود. اعضای حسی من کاملا خوب کار میکردند و حافظه من می توانست همه چیز را ضبط کند. هیچ گونه مشکل و یا دردی احساس نمیکردم. به زودی محل تصادف را که دیگر چندان برایم جالب نبود ترک کرده و به قوتور شدن خود ادامه دادم. همه چیز سرشار از صلح و صفا و توازن بود. صداها و بازی رنگ ها شدت گرفت. آنها پیرامون مرا احاطه کرده بودند. سپس من حیات خود را مجدداً اما این بار به صورت معکوس بازیافتم. هر صحنه به طور کامل‌تر طراحی شده بود. من این صحنه ها را به عنوان هنرپیشه اصلی و در همان حال به عنوان یک تماشاچی می دیدم به عبارت دیگر احساس خاصی در مورد تمام وقایع زندگی خود از بالا از پایین و در تمام جهات ضمن قوطه ور شدن در یک فضای چهار بعدی داشتم یک نور ملایم و خوشحال کننده که توسط نوعی انرژی کیهانی اشبا شده مرا در بر گرفته بود و من بیشتر و بیشتر خود را خوشبخت احساس میکردم. ولی ناگهان خود را از دیدگاه های خود و از این دنیای خوشایند کند شده احساس کردم. در این حالت بود که معالجات پزشکی مرا به حیاتی دوباره باز کردند. در گرداب سیاهی افتادم و پس از یک شوکه باور نکردنی به بدن به شدت زخمی خود احساس کردم که باید دوباره زندگی کنم. و از همین جا داستان دردناک من آغاز شد در خاتمه این موضوع را با گفتن این جمله تکمیل می کنم که زیباترین واقعه زندگی من مرگم بود و من خوشحالم که یک بار دیگر نیز باید آن را تکرار کنم در مورد این داستان چه فکر می کنید؟ آیا یک واقعیت روحی را تعریف می کرد یا قطعاتی را که از رویا ساخته شده بودند؟ متذكر میشویم که تمام چیزهایی که استفان دیده یا احساس کرده است، حالت قوتور شدن، احساس روشنایی، به خاطر آوردن صحنه‌هایی که قبلاً در آنها زندگی کرده و احساس درک یک واقعیت مافوق به اشخاصی که یک مخدر توهمزا نظیر ال‌اس‌تی که در فصل هفتم در مورد آن صحبت خواهیم کرد، مصرف می‌کنند نیز دست می‌دهد. می‌دانیم که مغز مخدرهای مسکن و تخدیر کننده ای را خصوصاً از نوع ها یا مورفین‌های طبیعی می‌سازد که در برخی شرایط آزاد می‌شود و می‌تواند یک رشته توهمات را ایجاد کند. با این حال نکته تکان دهنده این است که تعداد زیادی از افرادی که دوباره به زندگی اند و در وهله اول از نظر جسمانی مرده محسوب میشدند و بعدها توانستند احساسات پس از مرگ خیش را تشریح کنند. مذهب ایشان هر که باشد و به چیزی که ورای دنیای ما وجود دارند معتقد بوده یا نباشند وضعیت را به صورت یک سانی تشریح می کنند. به همین دلیل، برخی از محققین نظیر مودی و ساور ضمن آنکه قبول دارند این مسئله دلیل علمی برای زندگی پس از مرگ ما به همراه ندارد با این حال اعتراف می کنند که شدیداً به ما ورا و طبیعه به هر حال حتی اگر مسئله پس از مرگ توهم نباشد، حداقل این مسئله را نشان می دهد که ظاهرا مرگ در حالت سرخوشی اتفاق می افتد و این نکتهی بسیار اطمینانبخش بخش است،